فصل ماه رخشانی تو زمینه نیلی آسمان نشسته بود و میخندید آسمان نیلی بود. مثل اینکه جوهر سیاه و آبی با هم قاطی شده بود و ستارگان و ماه الماسگون توش نقش خورده بود. هوا زلال بود. ابر نبود. مک اول غروب سنگین بود و تاریک بود. حالا پخش و پراکنده شده بود. شمال نرمی میوزید. نکنال چند تا جغد از تو سیاهی نختستان ها بلند بود که خاموشی را ترک میداد و رو نفس گرفته شب سنگینی میکرد. تنگسیرها گله به گله صحرا مثل های خاک رو رملهای نموک نشسته بودند و تمام هوش و حوازشان پیشان دو تا تفنگچی و حکومتی بود که جلوشان روبروی کپر نشسته بودند. همهشان روبروی کپر نشسته بودند. همه چشم راه چیزی بودند. تنهای خسته تو ماسه ها فرو رفته بود و دلها پرشور و مشوش بود. هیچکس حرف نمی زد و هیچکس از جایش تکان نمیخورد. فقط گاهی سر و گردنها به اطراف میچرخید و چشمها به هر سو در گردش بود هر شب بر بچه های آبادی پس از کار روزانه زیر درخت بابل بزرگه رو آبن ده جمع میشدند و از کار و بار و زندگی خودشان برای همدیگر تعریف میکردند و هنوز شب بالا نیامده متفرق میشدند و هر کسی سر خانه و زندگیاش میرفت اما امشب همه چیز دوست شده بود. کسی زیر بابل نرفت و همه آمده بودند دوروبر خانه محمد جمع شده بودند. حالا دیگر همه فهمیده بودند که محمد چه کرده و توفنچی های حکومتی برای چه به آنجا آمده بودند. توفنچی های حکومتی در نظر آنها خارجی بودند. به همان چشم که به هندی ها و انگلیسی ها نگاه می کردند، به آنها هم همانطور نگاه می کردند. حالا همه تو صحرا نشسته بودند ببینند چه می شود، یک انتظار سنگین و شوم رو را سرپوش گذاشته بود، دو توفنگچی حکومتی دور از جمعیت و نزدیک به در کبر محمد نشسته بودند، توفنگچی کازرونی به چرت افتاده بود، شب داشت به دونیم می شد و ماه کوچکتر و رخشانتر شده بود و حالا شمال، تون تر شده بود و رو پوست تن میلغزید و خنک میکرد و تفنگچی آذربایجانی جانی بی بیقرار و ناراحت بود تو دلش غربتی میکرد و هر دم این طرف آن طرف را نگاه میکرد از آن همه تنگسیر که دور و ور آنها جمع شده بودند و هیچ نمیگفتند دلخور بود دلش میخواست میتوانست آنها را متفرق کند اما آنها خانه هاش آنجا بود و او جرأت چون این کاری را نداشت حوصلش از تنهایی سر رفته بود هیچ کس حرف نمیزد رفیقش هم دایم چرت میزد خودش تازه به بندر آمده بود و هوای آنجا دستش نبود تفنگچی کازرونی تکانی خورد و خودش را جمع وجور کرد و گفت من خیلی خستمه میخوام یه دقه سرم بذارم زمین یه چرت بخوابم. اگه خبری شد صدام کن تفنگچی آذربایجانی زربایجانی و نگاهش را به چهره رفیقش دواند و گفت حالا موقع خوابه شاد بیادش خیلی خوب بیادش چه کارش کنم؟ چه کارش کنیم؟ بله من از تو پرسم چه کارش کنیم؟ میزنیم میزنی اما جفتک به طاقه طویله په اینم شد حرف و تفنگچی کازرونی خندید و چرتش پاره شد. دیگر خوابش نمی آمد. دنباله حرفش را گرفت. بیا برای اینکه سرت گرم بشه و دلت سرنری متلی برات بگم. میگن وقتی که خدا این دنیا را ساخت، و جونورا رو توش ول کرد، درش خواست و عرشری شیطون بذاره تا ایمون مردم رو امتحان کنه. جبرئیل را صدا کرد و یه گونی پر از شیتون از اون های ناتو و ناغولا بهشتاد و گفت تو شهرهای خیلی گنده مثل تهران و شیراز و بوشهر و دوسته تا شیتون بنده از اما شهرهای کوچک مثل کازرون و برازگون فقط یه دونه شیتون بیشتر ننداز. شیتون شیطونها رو گرفت رو گولش و بال زد و اومد بالای سر هر شهری که گنده بود و بیشتر آدم توش بود یکی سه تا شیطون از بالای آسمون توش. وقتی رسید بالای کازرون دید اینجا خیلی کوچیکه و پیش خودش گفت اینجا یه شیطون هم برای زیاده و دستش رو تو کیسه کرد که یه شیطون بندازه تو کازرون اما حواسش پرت شد و دستش در رفت و یهو گونی سرش باز شد و هر چی شیطون تو گونی بود شر ریخت تو کازرون و همه ها دویدن رفتن تو باب نظر لای درختای نارنج قایم شدن جبرائیل خیلی خلقش تنگ شد گفت حالا جواب خدا رو چی بدم اینکه خیلی بد شد اما دیگه کاری از دستش ساخته نبود، دیگه نمیتونست شیتونا رو جمع کنه، برگشت بره عرشو خدا رو خبر بده که چه دست گلی به آب داده وقتی توگونی نگاه کرد، دید یه دونه شیطان لجمار مردنی گونی مونده، اون وقت سر راهش یه دونه شیطون انداختش تو اسباهون حالا فهمیدی چرا کازرونیا ها اینقدر ناتو و ناغل از آب دار اومدن که دست اسباهونی ها رو از پشت بست توفنگچی آذربایجانی نیشش وا شد و زوغ زده گفت پس ایله تو تربز چند انداخت؟ رفیقش که از سآل همقطارش دلخور شده بود گفت نمیدونم شایدم چیزی به ولایت تو نرسیده باشه خدا میدونه این را بهت گفتم که اگه من یه وقتی یه چیزی بهت میگم حرفم رو گوش کنی هرچی باشه من کازرونیم هرچی شیتون تو گونی جبرهیل بوده تو شهر ما جمع شدن حالا این تنگسیرهای دور خود خودتو خوب تماشا کن. اینا همهشون زیر چوخه تفنگ و دهتیر دارن. از این گذشته، گله به گله این بیابون رو که میبینی تفنگ و مزر زیر خاکه. اگه بخوای دست از با خطا کنی، هنوز نجنبیدی چنون بزنندت که مثل تپاله رو زمین پهن بشی. شما قربتی‌ها تا بیاین مردم اینجا رو بشناسین، شتاره دن خودش رو دیده. تفنگی آذربایجانی آب دهنش را داد. وقتی رفیقش حرف میزد تو دهن او نگاه میکرد اما حالا برگشت و باز به تنگسیرهایی که خاموش رو رمل نشسته بودن نگاه کرد و برگشت به رفیق گفت پس جواب نایب رو چی باید بدیم اگه مردک اومد پس بشینیم کنیم؟ خدا خدای جو عقل به تو یه خروار پول به من بده نایب حالا پای بساط عرقش کیفوره نمیدونی امروز چقدر دست و پاچه گم کرده بود به خدا اگه گیرش می اومد هر سولاخی ست دومن میخرید که توش قایم بشه اینا تهرونی هن. یه پخت تو دلشون بکنی شلوارشون رو زرد میکنن اینا دل و جیگر اون دارن که با تنگ دست و پنجه نرم کنن من توی تو رو میدن سینه گلوله و خودشون میرن پی کیفشون بعد خمیازه بلندی کشید و گفت حالا من خوابم میاد تو هم بگیر تخت بخواب تا صبح بشه ببینیم چه میشه بعد رو زمین دراز کشید و تفنگش را گذاشت زیر سرش تفنگچی آذربایجانی با دستپاچگی گفت پدر بیا تو میونی این همه تنگسیر میخوابی که میخورنه مون رفیقش گفت تو هم بخواب اینطوری بهتره نباید چوب زیر دم بشون کنیم اینا با ما کاری ندارن تفنگچی آذربایجانی باز دور خودش را نگاه کرد و تنگسیرها را ورانداز کرد و گفت چند نفرن نمیدونم ده بیست تا گاستم پنجاه تا ببینم بگو این چند کشتی پنج تا یکی هم زخمیه تالا گاستم مرده باشه اونم روز روشن اونم روز روشن خیلی جیگرم ها. به خودت بگو او یه نفر بود روز روشن برابر هزار تا چش را افتاد تو شهر و اون همه آدم رو و پل کرد اینا که یه گله هستن تو این نسبه شبی سر جا و منزل خودشون نمیتونن ما دو نفر رو نفله کنم؟ کاش نایب بیشتر تفنگچی تو میفرستاد توفنگچیشون کجا بود؟ مگه چقدر تفنگچی تو بوشهر هست؟ و اگه اینا ما رو بکشن اله حاکم یکی یکیشون را تناب میندازه. پس از مرگ ما میخوام سر به حاکم نباشه وقتی ما نباشیم دنیا برای چه خوبه؟ باور کن من آدم به خریه تو ندیدم پس چه کنیم؟ چمچاره مرگ بگیر بخواب دو آزربای جانی برزخ بود هر دم بر میگشت و پشت سرش را نگاه میکرد ترسیده بود یک هو تو دلش خالی شده بود فکر میکرد تنگ از سر جاهاشان پا شدند و پاورچین پاورچین از پشت سر دارن میایند که خفهش کنند تو پشتش لرزید رفیقش چشمانش را بسته بود و آرام نفس می کشید. هی شب بالا می آمد و هی نور ماه ما آن را می هرچه گرما رو زمین بود نسیم شمال آن را مکیده بود و در خود فرو می کشید.